همان زمستانی که صدای ضعیف گیروسوت را شنیدم ماجرای ترخی برایم پیش آمد. آدم سی سال سختی بکشد تا زندگیش روشنتر و موزونتر از سالهای قبل قبل وان وقت ناگهان اتفاقی او را به عقب برگرداند ماه دسامبر بود. تقریبا یک هفته میشد می که وقتی بیرون میرفتم یا به خانه برمیگشتم میدیدم زنی در چند متری در ساختمان یا پیاده روی روبرو بی حرکت ایستاده. هیچ وقت قبل از ساعت شش بعد از ظهر نمی این زن قد بلند منتوی می پوشید با آستری از پشم گوسفند شاپای لب پهنی روی سرش گذاشته و یک کیف بنددار بلوتی از شانهش آویزان بود با نگاهش تعقیبم میکرد و با رفتاری تهدید کننده از جایش جنب نمیخورد. این زن از کدام کابوس فراموش شده دوران بچگی هم بیرون آمده بود؟ از پنجره خم شدم و نگاه کردم در پیاده رو منتظر بود و انگار ساختمان را می پایید چراغ اتاق را روشن نکردم غیر ممکن بود ببیندم با آن ساک بنددار، آن کلاه آن چکمه ها، آدم خیال می کرد آشپز یک ارتش تارومار شده است می ترسیدم تا آخر عمرم همینطور جلوه خانم کشیک بدد و اسباب کشی هم بیفایده باشد چون ممکن بود هر بار آدرس جدیدم را پیدا کند یک شب دیرتر از همیشه برگشتم هنوز آنجا بود بی حرکت میخواستم در ساختمان را باز کنم که آرام آرام نزدیکم آمد یک پیرزن با نگاهی جدی به من خیره شد انگار خستش این بود که از چیزی خجالت بکشم یا اشتباهی را که مرتکب شدهم به یاد بیاورم در سکوت به او زل زدم آغවත از خودم پرسیدم چه گناهی از من سر زده دستهایم را در هم کردم و با صدای آرام و شمرده گفتم دوست دارم بدانم از من چه میخواهد. چونش را بالا آورد و از دهانش موج ناسزا و بد و بیراه بیرون ریخت اسم کوچکم را صدا میزد و به من می گفت تو یعنی فامیلم بود؟ شاید مدت ها پیش دیده بودمش شاپای لب پن قیافش را جدی تر می کرد زیر نور زرد چراغ شبیه یک بازیگر سالخورده آلمانی به نام لنی ریف شده بود زندگی و احساسات روی صورت مومیایی شده بله مومیایی شده یان یا دختر بدزات و بلحوس 80 سال پیش جایی نداشت چشمهای پرنده شکاری چنان به من دوخته شده بود نگاهم را با این نمی بردم خنده هم گرفته بود احساس می کردم آماده از نیشم بزند و زهرش را وارد بدنم کند ولی پشت این حالت حجومی چیز دروغینی مثل بازی بی احساس یک هنر پیش وجود داشت دوباره مرا به باد فهش گرفت. به در ساختمان تکیه داده بود تا را را ببندد. همچنان لبخند میزدم و خوب می دانستم این کار آتشش را تندتر می کند ولی نمیترسیدم. وحشت های کودکانه و فکر مرگ و جادوگری که توی تاریکی می آید و در اتاق خواب را باز می کند دیگر تمام شده بود. ممکنهیه کم صداتونو بیاریم پایین خانم؟ این جمله را با لحن معدبانه ای گفتم و خودم هم تعجب کردم. ظاهراً او هم از آرامش صدای مبهود شده بود. ببخشین من عادت به شنیدن صدای بلندی مثل صدای شما رو ندارم. دیدم اخمایش در هم رفتند و چشمایش در عرض یک چهارم ثانیه باز شدند. شانه بسیار سنگین و برجستش را جلو آورد تا به مبارزه دعوتم کند. لبخند زدم: آن وقت بود که حمله کرد. با یک دست از شانهام آویزان شد و با دست دیگرش سعی میکرد صورتم را چنگ بزند. میخواستم از دستش خلاص شوم ولی واقعا خیلی سنگین بود. کم کم حس کردم وحشتهای کودکانه دارند بر میکردند. بیشتر از سی سال تلاش کرده بودم زندگیم مثل یک پارک فرانسوی منظم باشد. اما این پارک با گذرگاه بزرگ، چمن و گللبوطه هایش بااطلاقی را پوشانده بود که چیزی نمانده بود تویش فرو بروم. سی سال تلاش این همه زحمت برای اینکه شبی یک ستاره دریایی توی خیابان منتظر بنشیند تا خودش را رویم بیندازد پیرزن میخواست خفه کند به مثل خاطرات بچگی هم سنگین بود داشت کفنم می‌کرد. دست و پا زدن دیگر بیفایده بود هیچکس کس نمیتوانست کمکم کند کمی پایین‌تر، توی میدان یک کلانتری بود که نگهبانها روبرویش کشیک میدادند همه این ماجراها باید به ماشین پلیس و کلانتری ختم میشد این تقدیر از مدت ها پیش رقم خورده بود در هفده سالگی هم وقتی پدرم میخواست از شهرم خلاص شود نزدیک اینجا و حوالی کلیسا بود که مأمورها سوار ماشینم کردند بیشتر از سی سال تلاش بیفایده برای برگشتن به نقطه اول یعنی کلانتری محله چه فلاکتی حتما یکی از نگهبانها گزارش میداد دو نفر مست در خیابان به جان هم افتادند من و پیرزن را روی نیمکتی می و بعد باید مثل همه ای آنهایی که در دستگیری جمعی بازداشت میشوند هویتم را اعلام می کردم. اول میپرسیدند او را میشناسم؟ بعد رئیس کلانتری می گفت اونجای مادرتونه ولی بر اساس شواهد رابطه ی فامیلی با هم ندارین. در ضمن شما از مادری به دنیا آمدین که هویتش معلوم نیست. آقا شما آزادین او همان رئیسی است که وقتی ده ساله بودم پدرم مرا تحویلش داد. دکتر بویه رح داشت زندگی یک تکرار ابدی است خون جلو را گرفت و با زانویم ضربه محکمی به شکم پیرزن زدم. قفل دستهایش باز شد و شیانه حولش دادم حالا می توانستم نفس بکشم همش را با حرکتی غافل گیر کننده خونسا کرده بودم. دیگر جرأت نمیکرد نزدیکم بیاید. لب پیاده رو بی حرکت مانده بود و با چشمهای کوچک وقت نگاهم نگاه هم میکرد. این بار او حالت دفاعی گرفته بود. سعی می کرد لبخند بزند لبخند وحشتناک یک بازیگر ناشی تئاتر که با سختی نگاهش جور در نمیآید. دستهایم را در هم غلاب کردم وقتی دید لبخند به کار نمی وانمود کرد می‌خواهد اشکش را پاک کند چطور توانستم با این سن و سال از یک شبه بترسم و لحظه ای فکر کنم که قدرت پایین کشیدنم را دارد دیگر دوران کلانتری ها تمام شده بود روزهای بعد دیگر جلوی ساختمان نگهبانی نمی‌داد و تا به حال هیچ نشانه زنده بودنی از خودش نشان نداده. آن شب باز هم از پشت پنجره زیر نظر گرفتمش. ظاهرش اصلا نشان نمیداد که تحت تأثیر این درگیری قرار گرفته باشد. کنار جدول قدم میزد. و آمدهایی منظم در فاصله بسیار کوتاه اما با گامهایی محکم و کم و بیش نظامی. شق و رق؟ با چانه‌ای رو به بالا هر از گاهی سرش را طرف ساختمان می‌چرخاند تا ببیند کسی آنجا هست یا نه بعد شروع کرد به لنگیدن اولش امتحان می‌کرد درست مثل تمرین کم کم آهنگش را پیدا کرد دیدم لنگ لنگان میرود و دور میشود ولی برای بازی در نقش آشپز سال خورده‌ای دنبال ارتشی تار مار شده می‌گردد زیادی قلوف می کرد.